فصل بیستا یکم در پایز آن سال پولت تغییر چندانی در آن خانه نداد فقط از اتاق جلویی چند قطعه اشیاء قدیمی را برداشت. پدرم همچنان با سرسختی هر گونه فکر تغییر و تبدیل را رد می کرد آخر پولت فقط یک کتبانوی معمولی نبود که بخواهد شوهر تازه خود را اهل کند او هنرپیشه هم بود و برای خود ای داشت. چیزی که در پایز سال 1936 بیشتر در فکر او بود همین بود. موفقیت او در فیلم اصر جدید بسیار برجسته بود و خود او هم مانند دیگران می دانست که باید کارش را با شرکت در فیلم دیگری ادامه دهد. خود پدرم می دید که این حرف پولت منطقی است. در جریان سفرشان به خارجه، پدرم بیشتر اوقات در اتاق خود در کشتی میماند و روی فیلمی که باید پولت ستاره شود کار میکرد. این یک فیلم ناطق بود که پدرم نقشه تحقیه آن را داشت اما بروز نمیداد. گرچه او انتظار داشت که با سناریوی تمام شده این فیلم از سفر برگردد، اما این کوشش نتیجه نداد. در تمام تابستان و پایزان سال به چستجو ادامه داد. هر بار از نو شروع می کرد. گاهی برایش روزنه امیدی می درخشید ولی بلا فاصله آن را کنار می مانند یک نفر معدنچی که رگهی در معدن پیدا کند و به آن امید ببندد ولی ناگهان به فهمت که امیدش بیهوده بوده است. با وجود تقاضاهای پولت مبنی بر اینکه پدرم او را تا هنوز از خاطرها فراموش نشده است، به نحوی به گروه تماشاچیان سینما معرفی کند، سه سال طول کشید تا پدرم دست به تعلیق فیلم جدیدش زد. این فیلم همان است که همه جهان را چه قبل و چه بعد از جنگ دوم جهانی مبهوت کرد و به جنبش آورد و نام آن دیکتاتور بزرگ بود. یکی از جنبه‌های جالب نبوغ پدرم همیشه این بوده است که با وجود تصمیماتش تا موقعی که فکر خلاق به سراغش نمی نمیتوانست دست به کاری بزند ولی معمولا این فکر خلاق به موقع به سراغش می‌آمد پدرم هنوز به دنبال داستان فیلمی برای پالت بود که کریسمس آن سال فرا رسید ایت‌های کریسمس در خانه پدرم تصویر پابرجایی در مغز من باقی گذارده است زیرا تمام آنها از نهاز سبک و موضوع تقریبا به هم شبیه بودند. حتی هوا هم در این عیاد مانند هم بوده است. تا آنجا که من به خاطر دارم، های کریسمس دوران کودکی و جوانی من، هوا همیشه آفتابی و ملایم بود. من و سیدنی به همراکی نانا ساعت یازده به منزل پدرم رسیدیم. مراسم نهار همیشه از ساعت دوازده شروع می شد. رفتن به داخل خانه او در آن زمان درست مثل رفتن لای صفحات کتاب های دیکنز بود. زیرا پدرم کریسمس را همیشه به سبک انگلیسی برگزار می کرد. از جلوی در خانه درخت کریسمس که در انتهای سرسرا بود دیده می شود. این درخت همیشه یک درخت سفید مجلل بود که تا سخف می رسید. هفته قبل از کلیسمس، مستخدمین ژاپنی زیر نظر فرانک آن را تز این می کردند. برای شاپانی ها مثل ما کلیسمس عید محسوب می شد. زیرا پدرم همیشه عیدی کلانی به آنها میداد. اگرچه درخت کلیسمس خیلی قشنگ بود، ما فقط نگاهی تحصینامیز به آن می و بیشتر به بسته های حدیه زیر آن توجه داشتیم. وقتی وارد سرسرا شدیم، پدرم به استقبال ما آمد. حال و بشاش بود و همه علائم آزردگی از چهری او زدوده شده بود. کریسمس برای او مانند نمایشی بود و در همه سالهای کودکی ما، او هر نمایش را با اندک تغییری اجرا می کرد. او که میدید دید چشمهای ما به بسته ها دوخته شده، می خب بچه ها، متاسفم که در این کریسمس خیلی برایتان هدیه نخریدم. فقط چند تا چیز اجازی تهیه کردم. امسال خیلی کرانی بود. من و سیدنی وظیفه خود را میدانستیم. به صدای خودمان علامت نارضایتی میدادیم و میگفتیم بسیار خوب بابا. پدرم فیل سویانه میگفت خوب. دستهایش را شادمان از اینکه نمایش را دارد اجرا میکند به هم میمالید ولی میکوشید هر گونه آثار خوشی از صدایش محو شود و می افزود، ما که هر سال نمیتوانیم ایید را مفصل بگیریم. می توانیم بچه ها؟ من ووسیدنی که در اجرای این بازی هر هرثال کارآدتر میشدیم یاد گرفته بودیم که آهی بکشیم و جواب دهیم. با جان غصه آن را نخورید. تمام صبح دوستان و بستگان در آنجا جمع شده بودند تا در مهمانی شرکت کنند یک عموی ناتنی داشتیم که هنر نامش ویلر درایدن بود و این بار همراه پدرم به کالیفرنیا آمده بود پسرش سپنسر از ما جوانتر بود ولی می توانست چندین صفحه شکسپیر را از بر بخواند. برای آنکه پدرش او را تعلیم داده و مجبورش کرده بود این اشبار چنان شدید بود که وقتی اسپنسر بزرگ شد، همه این فرهنگ و آموزش فروکش کرد و خودش نوازنده جاز شد. امروز او تبل زدن را بهتر از شعر خواندن بلد است. پدر ما از اطلاع اسپنسر به آثار شکسپیر خیلی خورستند بود و گاهی کارهای او را به ما سرکوفت می‌زد. شاید امیدوار بود به این ترتیب رشک ما را برنگی زد. تا ما همان کاری را بکنیم که اسپنسر زیر فشار پدرش کرده بود. اگر چنین بود، باید بگویم که رنج بیهوده می برد. من و نمی توانستیم نسبت به اسپنسر که پسری خوب و معدب بود حسادت کنیم. علاوه بر این می که وضع ما بهتر است. پدری داریم که هرگز ما را مجبور نمی‌کند، حتی یک خط از چیزی را یاد بگیریم. اموسیدنی چاپلین هم آنجا بود. مهمان معروف ما دکتر رینولدز و دوستان قدیمی پدرم آلف ریوز و آمی ریوز نیز بودند. تیم دورانت که پدرم تازگی در آن سال به وسیلی کینگ ویدور با او آشنا شده بود، به اتفاق دخترش مارچوری حضور داشت. کلیر، کینگ ویدور و دوگلاس فربانگز تا سال مریش در 1939 و همسرش، لیدی آشلی جزو مهمانان هر سالی عید کریسمس بودند. هر کدام از مهمانان برای من و سیدنی ای آورده و آن را زیر درخت در کنار سایر بسته ها گذاشته بودند. ساعت دوازده همه دور میز بزرگ اتاق نارخوری نشستیم. مهمانی کریسمس خیلی خودمانی بود. دیگر در آن روز پدرم در مراعات آداب و قواعد معاشرت و مهمانی اصراری نداشت. من و سیدنی میثالستیم اگر دلمان خواست حرف بزنیم، حرف دیگران را قطع کنیم و هر چه میل داریم بخندیم. صورت غذا در همه سالها مثل هم بود. با روست بیف شروع و با پودینگ ختم میشد. همه شامپانی می و پدرم همیشه کمی شامپانی برای چشیدن به من و سیدنی بعد دور درخت جمع می شدیم تا هدایا را باز کنیم. نایهان من و سیدنی در مرکز این نمایش قرار می گرفتیم. قیافه تسلیم و رضا به خود میگرفتیم و به انبوه هدایایی که از روی نشانه معلوم بود مال ماست نگاه می کردیم. یکی یکی آنها را در می آوردیم و باز می کردیم. هرچه انبوه هدایا بیشتر می شد، های ما حالت حیرت بیشتری به خود می گرفت. با دهان باز می پدر، همه اینها مال ماست؟ پدرم به شادی با حیرت آمیخته لبخند می زد و می گفت، آری، مال شماست. ما با لحن کشیده ای که ها از سرگشتگی بود می گفتیم اما شما گفتید که راستی از هدیه ها که همیشه فراوان بود خوشحال شده بودیم اما از این هم خوشحال می شدیم که این نمایش کوچک را همراه پدرمان بازی می کنیم از حدایه که اسم از سال 1936 دوتاشان در خاطر من باقی مانده است یکی از آنها آلبومی از کنسرت‌های شماره یک چایکوفسکی برای پیانو و ارکستر بود. یک شب در خانه پدرم رادیو را باز کرده بودم. این کنسرتو را پخش می‌کرد. نتوانسته بودم از آن جدا شوم. به همین جهت پای رادیو خوابم برد. پدرم و پالیت که این واقعه یادشان بود برایم آن آلبوم را خریده بودند. حدیه دیگر چنان که انتظارش را دارید از پولت بود و من و سیدنی آن را زیر درخت کریسمس نیافتیم. پولت از اتاق بیرون رفت و با دو تا طوله قشنگ برای هر کدام من یکی برگشت. پدرم دوباره با مسئله سگ ها مواجه شد. آن هم نه یکی بلکه تا. چون سگ سابقمان که در خانه تربیت شده بود نیز در اطراف می پلکید. این سک های تازه با گوشهای دراز و صورت گوسفند مانندشان جالب و باهوش بودند اما دلش نمی‌خواست هیچ یک از آنها در خانه باشند با کمک پنهانی من و سیدنی سگ‌ها طرز ماندن در خانه را یاد گرفتند بعد ما همراه آنها در اتاقها پرسه میزدیم. تا پدرم متوجه شد و فریاد می‌زد این کسافت‌ها را از اینجا بیرون ببرید در این موقع من و سیدنی و دو تا طوله که اسمهایشان را پنج و جودی گذاشته بودیم با عجله در میرفتیم و به طرف حیات میدویدیم تا کریسمس تمام میشد پدرم بر سر کار خود برمیگشت حتی فرصت نمیکرد پولت را در مهمانی خانوادگی کینگ ویدور که در اقامتگاه كوهستانیش برگزار میشد همراهی کند. چون پولت برمیگشت پدرم را سخت سرگرم کار روی آخرین داستانش می دید سار پیش پدرم یک سناریو نوشته بود که زمینه شرقی داشت و یکی دیگر نوشته بود که داستانش در جزایر دریای جنوب به وقوع پیوست چند سناریوی دیگر هم شروع کرده بود اما عقیده داشت که یکی از آنها که داستانش بر اساس کتاب دی ای ماری بود بهتر از دیگران است شروع شوق پدرم در این باره چنان از دل بود که وقتی پولت به حرفهای او گوش میداد معتقد میشد که بالاخره کار درست شده و این طرح آخری به پایان رسیده است. اما در آن سال پیش آمدی برای پولت کرد که سرش را به دوران آورد. دیوید سیلزنیک در جستجوی کسی بود که در فیلم پرخرج چند میلیون دلاری او به نام برباد رفته نقش اسکارلت اوهارا را بازی کند. او به پولت نزدیک شد که آزمایشی به عمل آورد و از او بخواهد که این نقش را قبول کند عجیب نیست اگر بگوییم پولت از این پیشنهاد سخت به حیجان آمده بود او به عنوان دختر گمنامی برای شرکت در آوازهای دست جمعی به هالیوود آمده بود تنها نقشی که در سینما بازی کرده بود در فیلم سامت اصر جدید بود اکنون توجه آقای سلزنیک به او جلب شده بود که او را در یکی از بزرگترین نقش‌های تاریخ سینما روی پرده بیاورد. اما پدرم با این شادی و هیجان پولت شریک نبود. پولت همسر پدرم بود و علاوه بر این با او قرارداد داشت. پدرم نمی‌خواست او برای کسی دیگر کار کند. از این رو با سرسختی به روی سناریوی خودکار می‌کرد. در این اوضو و احوال بود که عید پاک فرا رسید و پدرم باز همه چیز را کنار گذاشت که اید را جشن بگیرد. تا این سال من و سیدنی در رنگ کردن تخم مرخها شرکت نکرده بودیم. اما شب آن عید به ما اجازه دادند که همراه پالت در سالن به این کار بپردازیم. پدرم کار پنهان کردن تخم مرخها را به خود اختصاص داد. چون این کار توتی آمیز بود، و با مذاق او جور در می آمد. او تخم مرغ‌ها را در ها و کاناپه سالن، در اتاق مهارخواری و حتی بیرون در چمن خانه پنهان کرد. صبح عید صبحانه را دیر خوردیم محیط آرام بود و بعد از چند ماه کار سخت، پدرم مانند روزی آفتابی پس از روزهای ابری می نمود. کمی بعد من و سیدنیا دوستانمان دوستان من در جستجوی تخم مرخا برآمدیم توری نکشید که بچه ها سر و سر خانه را پر کردند. جیغ میکشیدند و فریاد میزدند و هر جا را میکاویدند. پدرم پشت سر ما میامد. دست ها را به پشت زده بود مثل اینکه با این کار میخواست مانع پیدا شدن تخم مرخا شود. او برای راهنمایی ما میگفت حالا نزدیک شدی. حالا دور شدی. حالا داری نزدیک میشوی و ما را مانند رو خیمه خیم شب بازی راه کرد تا بالاخره همه ی تخم مرخها را پیدا کردیم. بعد از عید پدرم دوباره به کار استناریو نویسی از روی داستان ماری پرداخت. پولت انتظار می‌کشید، اما کم کم قلب پولت فروریخت، زیرا فهمید که همان داستان کهن دارد تکرار می شود. پدرم هر روز شور و شق کمتری به سناریوی خود نشان میداد و به نظر میرسید که میخواهد این را هم مثل سناریوهای دیگر کنار بگذارد. احساس یک امیدی پولت را فرا گرفت. حالا دیگر یک سال از اولین نمایش عصر جدید که او را به جامعه سینما معرفی کرده بود میگذشت. می ترسید که اگر باز هم منتظر بماند به کلی فراموش شود. اشتیاق او به ایفا نقش اسکارلت اوهارا در فیلم برباد رفته زیاد میشد. آقای سلزنیک هنوز هم پیشنهاد خود را تکرار می کرد. اما پدرم مانند همیشه ان ناپذیر بود و با ایفا این نقش توسط پولت مخالفت می کرد. این اوزا کمکی به هماهنگی خانواده چاپلین نمی کرد. روزنامهها شروع به پخش شایعات. درباره اختلاف پولت و پدرم کردند اما ما علامت واقعی به همخوردن روابط آنها را رو نمیدیدیم چون هر دو دقت میکردند عدم رضایت خود را نزد ما بروز ندهند